سر مار به دست دشمن بکوب که از اهدل حسنین خالی نباشد اگر این غالب آمد مار کشتی وگر آن از دشمن رستی. به روز معرکه ایمن مشو ز خسم ضعیف که مغز شیر بر آرد چو دل ز جان برداشت.